این داستان لیونر دلاور ماهیگیر فقیری بود که هر روز صبح برای ماهیگیری به دریا می رفت اون ماهیهای سید شده رو توی بازار می فروخت و با پول ناچیز اونا خرج زن و سیزده پسرش رو تأمین می کرد. روزی از روزها ماهیگیر به دریا رفت و هر سعی کرد نتونست حتی یک ماهی سید کنه اون روز زن و بچه ماهیگیر گرسنه به خواب رفتن روز بعد هم ماهی گیر زودتر بیدار شد و با قایق به دریا رفت ولی باز هم از ماهی خبری نشد. روز سوم نیمه شب به دریا رفت. عرق از سر و روش سرازیر شده بود. باز هم نشونی از ماهی نبود. ولی این بار چیز سنگینی توی تورش افتاده بود. تور رو به زحمت به ساحل کشید و اون رو خالی کرد. یک بار از وحشت به لرزه افتاد چون که یه اجده دریایی سید کرده بود. اژدها پرسید اینجا چه کار میکنی ای ماهیگیر. ماهیگیر گفت چه کار باید بکنم؟ ماهی میگیرم و از این را خرج زن و بچم و در میارم. اجدها گفت چقدر ماهی میگیری؟ کم؟ زیاد؟ ماهیگیر گفت کم؟ سید من کفاف زندگیم رو نمیده. حالا هم سه روزه که حتی یه ماهی کوچیکم سید نکردم و بچه گرسنه موندن نموندن. اجده گفت چند تا بچه داری؟ سیزده پسر ای اجده بزرگ. اجدها ادامه داد. سیزده پسر یکی از اونا رو باید بسپاره به من تا طورت همیشه پر از ماهی باشه. در غیر این صورت تو و خانوادت نیست و نابود میشید. اجده بعد از اون تور ماهیگیری رو گرفت و به اماغ دریا رفت. وقتی ماهیگیر تور رو بالا کشید پر از ماهیهای چاق و چله بود. اون روز ماهیگیر به حدی پول به خونه آورد که همه خانواده از خوشحالی توی پوست خودشون نمی گنجیدن. ولی برعکس خودش غمگین و نگران گوشه نشسته بود و گریه میکرد. پسر بزرگش گفت چه اتفاقی افتاده پدر که اینطور ناله و زاری میکن پدر گفت: پسرم اگر میدونستی که چه اتفاقی افتاده تو هم گریه میکردی. میدونی امروز یه اجدهای دریایی سید کردم اون از من خواسته که یکی از شماها رو بهش بدم وگرنه همگیمون نیست و نابود میشیم. پسر بزرگ گفت: « پدر جان اینکه گریه نداره من برای این کار آمادم مطمئن باش که هیچ خطری منو تهدید نمیکنه صبح فردا با روشن شدن هوا پسر بزرگ از خواب بیدار شد و لباس پوشید و پدرش رو بیدار کرد. ماهیگیر پیر با دلواپسی بلند شد. لباس ماهیگیری رو پوشید و با جوان به دریا رفت. اجده دریایی منتظر اونا بود تا چشمش به جوان افتاد گفت این به درد من نمیخوره این رو نمیخوام فردا یکی دیگهشون رو بیار. روز بعد ماهیگیر پسر دوم خودش رو همراهش برد. که اون هم مورد قبول اجدها واقع نشد. به این ترتیب ماهیگیر پیر و درمونده در دوازده روز هر روز به دریا میرفت و یکی از بچه رو با خودش می برد و اجدها هم دوازده بار دست دارد به سینه اون زد. ماهیگیر تو روز دوازده نومیدانه به خونه برگشت و گریه کنان کنار طور ماهیگیری نشست. پسر کوچیکش لیونر که تحت و قاری و عزیز دردونه بود دوون دوون پیشش اومد و علت گریه را پرسید پدر گفت چرا گریه نکنم میدونی که فردا ای لیونر عزیزم باید تو رو به اون بدم به اجدهای دریایی لیونر کوچیک پاسخ داد گریه نکن پدر مگه خودت همیشه نمیگفتی که کنار اجدها با آدم بد نمیخزره صبح روز بعد هوا گرگومیش بود که لیونر از خواب بیدار شد. لباسش رو پوشید و پدرش رو بیدار کرد. ماهی گیر بلند شد. آهی کشید دست فرزندش رو گرفت و اون رو به دریا برد. اجده که چشم راه اونه نشسته بود تا چشمش به کوچولو افتاد گفت بسیار خوب من همین بچه رو میخواستم. مطمئن باش ای ماهیگیر که از امروز تور ماهیگیری تو همیشه پره و پسرت هم مثل شاهزاده توی ناز و نعمت کنار من زندگی میکنه ماهیگیر پسرش رو بوسید و خم شد تا اون رو به اجدها بده اجدها هم دستاشو بلند کرد که اون رو بگیره تو این لحظه اقابی بزرگ و قوی هیکل پسر رو قاپید و به اوج آسمون برد دریا به تلاتم افتاد و اجدها فریاد زد ولی دیر شده بود و دست کسی به اقاب نمیرسید ماهیگیر گریه و زاری میکرد و از سرنوشت شوم پسرش به سر و روی خودش میزد اژدها که حال زار و نظار ماهیگیر رو دید گفت ای ماهیگیر حالا که به قولت عمل کردی مطمئن باش که من هم به قولم وفادار میمونم پس هر وقت تورت رو به دریا بندازی. مطمئن باش که اون رو پر از بهترین ماهی های دنیا میکنم. ولی راستی بر سر لیونر چی اومد؟ اقاب لیونر رو بر فراز کوهها، جنگلها، رودها و دریاها با خودش برد و اون رو به باغ قصری واقع در جزیره دور افتاده بر زمین گذاشت. ولی تا پای اقاب به زمین رسید به شکل و شمایل زنی زیبا در اومد. این زن خودش رو فرشته آگولینا معرفی کرد و همراه جوان وارد قصر شد. از اون به بعد لیونر کنار فرشته ها زندگی می‌کرد. اونا بهش خوندن و نوشتن یاد دادن. مهتر اسبابش سوارکاری یاد داد و شکارچی فوتوفن شکار و روش استفاده از سلاح رو. به این ترتیب پسر کوچیک ماهیگیر بعد از مدتی مرد دلاوور و کاردان شد زمان مثل برق و باد میگذشت و لیونر خیلی زود به بیست و یکمین سال زندگی خودش رسید ملکه آگولینا تصمیم گرفت به همسری اون در بیاد. به این مناسبت جشن باشکوهی در قصر فرشتگان برگزار شد و از اون به بعد لیونر دلاور با تمام وجود احساس خوشبختی میکرد. ولی مدتی نگذشته بود که یک بار هوای دیدن پدر و خانواده به سرش زد. ملکه که دلتنگی و قم قربت همسرش رو احساس کرده بود، با رفتن اون موافقت کرد و گفت فردا صبح زود اصب جادوی من در اختیار توه این عصای جادویی را هم با خودت ببر تا راه رو بهت نشون بده اگه به چیزی احتیاج داشتی با این یاقوت جادویی در میون بذار تا برات فراهم بشه ولی فراموش نکن که تو میتونی هر کاری انجام بدی مگر یک کار و اون اینه که اهدی رو از ازدواج ما دو نفر با خبر نکنی وگرنه دیگه تو رو نمی بینم. صبح زود لیونر دلاور از همسرش خداافظی کرد و رفت. اسب جادویی مثل پرنده چالاک شتابان میرفت و اسای جادویی همراه نمای راهش بود. هنگام شب مقابل کلبه در ساحل دریا توقف کرد. پیرزنی کنار کلبه نشسته بود اون کسی نبود جز مادر لیونر لیونر مثل غریبه به پیرزن سلام کرد و گفت ای خانم محترم اجازه میدید که من امشب اینجا بمونم پیرزن گفت بله با کمال میل ولی خدا کنه که از زندگی فقیرانه ما ناراحت نشی معلومه که تو آدم اشراف ای هستی و توی ناز و نعمت بزرگ شدی مهمون داخل کلبه محققر شد. لحظه ای بعد ماهیگیر پیر هم اومد. اون با دیدن این مهمون والا و با شخصیت در حیرت افتاد که پی چه کاری به کلبه خراب اونا اومده. ولی رفتار جوان خیلی عادی بود. از غذاهای اونا خورد و از هر دری سخن گفت. حتی وقتی زن و مرد از پسر گم شده خودشون تعریف کردن ساکت موند و به روی خودش نیاورد. اونا میگفتند که از روزی که فرزند کوچیکشون لیونر رفته زندگی براشون مثل شب تیره و تار شده. بقیه ای بچه هم ازدواج کرده و رفته بودند. ساعتی بعد لیونر توی رخت خواب قدیمی خودش کنار اجاق آتیش دراز کشید. روی انگشتر یاقود دست مالید و آرزو کرد کلبه محقر پدر و مادرش به قصری با شکوه مبدل بشه. فردا ماهیگیر از خواب بیدار شد، متحیر رو در این حال خوشحال به اطرافش نگاه کرد، خودش رو تو رخت خوابی نرم و گرم دید. با دست باچگی همسرش رو بیدار کرد، اون از شوهرش هم خوشحالتر بود، جای کلبه محقرشون رو اتاقی با شکوه و مجلل گرفته بود و جای لباسای کهنه، لباسای فاخر مثل لباسای یک فرمان و همسرش. زن و مرد هرچی فکر کردن عقلشون به جایی نرسید. ناگهان جوون دلاور وارد اتاق شد و حقایق رو گفت. لیونر گفت من پسر شما لیونر هستم و اینجا هم خونه همیشگی خودتونه. ماهیگی رو همسرش با شنیدن این حرف هیجان زده شده فرزند خودشون رو قرق بوسه کردن. اونا از اون به بعد شاهانه زندگی می بهترین لباسها رو می و خوشمزه ترین غذاها رو می ولی افسوس که شادی و سرور اونا مثل شادی های دیگه زیاد دوام نیاورد و لیونر عزم سفر کرد. دلاور بر اسب جادویی نشست و اسای جادوی ملک آگولینا هم راهنمای سفرش بود. اصا اون رو به هر شهر آبادی می برد. اون رو به شهری آباد و ثروتمند برد که پادشاهش مسابقه و دوئل بزرگی ترتیب داده بود. برنده مسابقه میتونست با دختر پادشاه ازدواج کنه. لیونر دلاور اونجا موند تا قدرت و شهامت خودش رو امتحان کنه. از یاقوت جادویی تقاضای زره آهنین کرد و چنان شجاعانه وارد کارزار شد، که تمام مبارزان دیگر را شکست داد و در پایان مسابقه سوار بر اسب از نظرها ناپدید شد. روز بعد در ادامه مسابقه لیونر دلاور با زره نقره‌ای پای توی مسابقه گذاشت و این بار هم همه او شکست داد. روز سوم پادشاه دستور داد جله فرارش را بگیرند و دور تا دور میدون مسابقه را با سه سر ردیف سرباز محاصره کنند. سربازان پسر دلاور را که این بار با زره طلایی ظاهر شده بود دستگیر کردند و به حضور پادشاه بردند. پادشاه گفت ای جوان دلاور چرا خودت رو پنهون می کنی حالا که پیروز شدی می تونی جایزت رو بگیری؟ پسر دلاور معدبانه جواب داد من از این جایزه معاف کنید من نمی اون رو بپذیرم. دختر شما دختری زیبا و با شخصیت من زن دارم و نسبت به زنم احساس مسئولیت می کنم. حاضرین سخنان لیونر رو اهانت به پادشاه دونستند و شاهزاده خانم هم از اینکه شخصیت خودش رو خورد شده میدید ناراحت بود. پادشاه گفت اگر این امر حقیقت داشته باشه تو رو می بخشم. وگرنه نه چنانچه یا و سرایی کرده باشی. حسابت رو کف دستت میذارم. حالا لازمه که همسرت رو به ما معرفی کنی. لیونر شرط ملک آگولینا رو فراموش کرد و برخلاف قولی که به اون داده بود گفت که همسری به نام آگولینا داره. بعد دستش رو, رو روی یاقوت جادویی کشید و خواست ملکه رو ظاهر کنه. ولی ملکه پدیدار نشد و به جای اون یکی از ندیمه ها اومد. همین ندیمه هم به حدی زیبا و شیک پوش بود که همه با دیدنش دهانشون از باز موند و گفتند. ای مرد دلاور راست گفتی این زن اگر واقعا همسر تو باشه زنی بسیار زیبا و دلارامه. لیونر با شنیدن این حرفا واقعیت رو گفت آی مردم بدونید که این خانم همسر من نیست بلکه یکی از ندیمه های اونه. بعد دوباره دستی به یاقود کشید و از اون خواست تا ملک آگولینا رو مجسم کنه. ولی ملکه هوریا این بار هم ظاهر نشد و به جای اون زیباترین ندیمش اومد. ندیمه چنان زیبا و خوشپوش که نگاه همه را به سوی خودش کشید و پادشاه با دیدن اون ندیمه زیبا گفت ای مرد دلآور واقعا راست گفتی همسرت بسیار زیباست. حالا بگو ببینم این خانم واقعا همسر توی یا نه؟ لیونر دلاور که هیچ وقت دروغ نگفته بود گفت این زن زیبا هم همسر من نیست بلکه یکی از ندیمه های همسرمه پادشاه با عصبانیت گفت بگو ببینم پس زن تو کجاست؟ لیونر برای بار سوم بر یاقود دست کشید و تقاضا کرد ملکه آگولینا ظاهر بشه که این بار برخلاف دفعات قبل خود ملکه ظاهر شد. پادشاه و حاضرین توی مجلس با دیدن اون زن زیبا از تعجب توی جای خودشون میخکوب شدند ولی ملکه از غم و غصه آروم و قرار نداشت. اون به تندی به سوی لیونر رفت. انگشتر رو از انگشتش درآورد آورد، جادویی جادوی رو ازش گرفت و گفت تو به من خیانت کردی، تو قول و قراری رو که با هم بسته بودیم زیر پا گذاشتی پس هیچ وقت تو رو نمی بخشم. مگر اینکه هفت جفت کفش آهنی بپوشی و اونارم پاره کنی ملک با گفتن این حرف از نظرها محو شد و رفت. پادشاه بعد از اون همه اتفاقات عجیب و غریب بر خودش مسلط شد و فرمان داد تا لیونر را از کشور بیرون کنند چون به عقیده اون پیروزی پسر دلاور نه به دلیل دلاوری و مردونگی بلکه به خاطر شیادی و حق بازی بوده معمورای دربار فرمان پادشاه رو اجرا کردند و لیونر را از قصر بیرون روندند تا هرچه زودتر اون دیار رو ترک کنه. اون به سراغ اسب جادویی رفت تا از اونجا بره ولی از اسب خبری نبود. بناچار پای پیاده به سوی ملکه هوریان به راه افتاد. لیونر بین راه به آهنگری برخورد. از اون خواست تا براش هفت جفت کفش آهنی بسازه. آهنگر پرسید آقای محترم کفش آهنی به چه دردت میخوره؟ میدونی که اونا صد سال هم فرسوده نمیشن. لیونر دلاور گفت من راه درازی در پیش دارم خواهش میکنم که این کفشا رو برام آماده کن. با آماده شدن کفشا مرد شجا یک جفت اونا رو پوشید و بقیه رو از خودش آویزون کرد. سه جفت روی سینه سه جفت بر پشت و راه سخت خودش رو ادامه داد هفت سال طول کشید تا اولین جفت کفش سوراخ بشه و بعد از اون چهارده سال دومین اون و با سوراخ شدن آخرین جفت کفش ها اون پیرمردی شده بود با ریشی سفید و قدی خمیده اما از ملکه آگولینا هیچ خبری نبود اون مثل همه فرشته های خدا خشم غضب خودش رو فرو برد لیونر رو بخشید و عصا و اسب جادویی رو براش فرستاد. تو اون وقت لیونر با هفتمین جفت و بهتر بگیم آخرین جفت کفش آهنی توی جهان سرگردان بود اسب جادویی اون رو که به صورت پیرمردی ضعیف و سفید مو در اومده بود نشناخت بلی مرد دلاور اسب رو شناخت و به اسم صدا کرد. اسب با شنیدن صدای لیونر بر برزمین میخکوب شد. مرد دلاور روی اسب نشست و اسب مثل پرنده تیز پرواز به سرعت رفت و همون روز به قصر هوریا رسید. ملکه هوریان که هنوز هم همون ملکه زیبا و جوان سالهای دور بود پنجره را باز کرد و با نگاهی به بیرون از اسب پرسید چه کسی همراه توست ای اسب عزیز؟ مرد دلاور که سنگینی کفشای آهنین پایین اومدنش را از اسب براش دشوار کرده بود به آرامی گفت منو نیمیشناسی ملکه هوریان؟ ملکه هوریان که لیونر را از صدا شناخته بود اسای جادویی رو به گردش درآورد. توی لحظه آن مرد پیر و فرطود به صورت جوانی برناو و توانا درآمد و از اون به بعد اون دو با شادی و خورمی به زندگی مشترک خودشون ادامه دادند. ملکه هوریان بعدها گفت، که همسرش بعد از تحمل اون همه ناملایمات ماد هیچ وقت رازداری و وفای به عهد رو فراموش نکرد سفر به دنیای پر رمز و راز افثانه ها طبیعت های زیبا و نایاب